میل علموزاب است و سراحیکان است، جسم است، پیاله با شرابش جان است، انجام بلورین که زمی خندان است، اشکی است که خون دل در او پنهان است. مینوش که عمر جاودانی این است، خود حاصلت از دور جوانی این است، هنگام گل است و مل و یاران سرم است، خوش باش دمی که زندگانی این است. میخور که به زیر گل بسی خواهی خوفت، بی مونس و بی حریف و بی همدم و جفت، زنهار به کس مگوت و این راز نه هر لاله پژمرده مخواهد بش گفت. گویند مرا چسور باهور خوش است، من میگویم که آب انگور خوش است، این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار، کاواز دهن شنیدن از دور خوش است.